دو کس دشمن ملک و دینند، پادشاه بی و زاهد علم بر سر ملک مباغدان ملک فرمونده که خدا را نبود بنده فرمون برداد.